این روستا بسیار زیباست. نام این رودخانه چیست؟ این رودخانه برزرود نام دارد. تمام خانه‌های ابيانه در شمال این رودخانه هستند. خانه‌های این روستا معماری جالبی دارد. بله، درها و پنجره‌های چوبی این روستا معروف است. ببینید تمام دیوارها با گل سرخ پوشیده شده است درها و پنجرهها بسیار زیبا هستند اما مثل اینکه که خانه ها چند طبقه هند بله چون ابیانه در دامنه کوه واقع شده است پشت بام هر خانه حیات خانه است. آن پیرمرد و پیرزن زن لباسهای محلی پوشیدند بله، این لباس سنتی روستای ابیانه است زنها لباسهای رنگارنگ و گلدار می پوشند به نظر می رسد مردم این روستا سنتی تر از نتنز و اصفهان هستند بله، چون اینجا کوهستانی است و از شهر دور است آداب و سنتهای این روستا حفظ شده است مردم این روستا به زبان فارسی صحبت میکنند؟ بله، زبان مردم این روستا فارسی است، اما لحجه قدیمی دارند. دوست دارم از زردالوهای دروش و خوشمزه این باغ بخورم.